اگر جور شکم نبودی، هیچ مرغ در دام سیاد نیفتادی، بلکه سیاد خود دام ننهادی. شکم بند دست است و زنجیر پای، شکم بنده کمتر پرستد خدای. حکیمان دیر دیر خورند و آبدان نیم سیر و زاهدان صد رمق، و جوانان تا طبق برگیرند، و پیران تا عرق بکنند، اما قلندران چندان که در معده جای نفس نماند و بر صفر روزی کس. اسیر بند شکم را دو شب نگیرد خواب، شبیز معده سنگی، شبیز دلتنگی،